ریچل سشنبه 23 جولای 2013 صبح تازه وقتی بیدار میشم احساسم رو میفهمم حجوم شادی مخلوط با یه چیز دیگه یه, یه،, یه وحشت گمنام میدونم که ما به حقیقت نزدیک بودیم من فقط نمیتونم به این احساس کمکی بکنم و این واقعا ترسناکه رو تخت نشستم و لپتاپ رو پامه روشنش میکنم و بی منتظرم تا بالا بیاد بعد به اینترنت وصل میشم. همه ای این مراحل به نظرم پایرناپذیر میاد. میتونم صدای کتی رو که تو اتاق راه میره بشنوم. چیز میزهای رو میشوره، از پلها میدوه بالا و دندوناشو مسواک میزنه. چند لحظه پشه در اتاق منتظر میشه. تجسم میکنم انگشتشو گرد کرده و بالا آورده آماده تا تق تق در بزنه. بعد فکر بهتری میکنه و از ها میره پایین. صفحه اخبار بیبیسی بالا میاد. خط اولش در مورد فایده ی ها بود. دومی خط راجب ستاره های تلویزیونی دههی هفته که به بی بند و باری جنسی متهم بودن. اما درباره میگان مگان و همینطور درباره کمال. ناامید شدم. میدونستم که پلیس برای متهم کردن یه مزنون 24 ساعت وقت لازم دارن و اونا الان به همین زمان رسیدن. هرچند بعضی وقتها کسی رو 12 ساعت اضافه تر هم نگه می دارن. من چیزا رو میدونم چون دیروز تمام وقت مشغول تحقیق بودم دربارهش بعد از لو رفتن تو خونه اسکات وقتی برگشتم اینجا تلویزیون رو روشن کردم و بیشتر روز مشغول تماشای تلویزیون و گوش دادن به اخبار بودم. مقاله ها رو خوندم و باز منتظر خبر موندم. تا وسط های روز پلیس از مزنونشون اسم برد. توی اخبار درباره شواهد کشف شده تو خونه و ماشین دکتر صحبت کردن، اما چی پیدا کردن. خون شاید تلفنش یعنی تا حالا کشف نشده لباسا یه کیف مسواکش اوننا تصاویر از کمال نشون دادن از نمای نزدیک پوستش است و خوش غیافه. نه از این عکس تمام چهره ای که برای ما استفاده میکنن یه عکس بدون روتوش طبیعی داشت جای را سفریم کرد و نیمچ لبخندی رو لبش بود. خیلی مهربون به نظر می رسید تر از اون که بشه بهش گفت قاتل اما ظاهر می‌تونه باشه اگه به ظاهر باشه تدباندی هم شبیه کاریگرند. تمام روز منتظر اخبار بیشتر درباره مزنونین جرایم عمومیم. اخبار آدم روبایی تجویزیات و بدتر. من منتظرم خبر جایی را که مگان هست بشنوم جایی که آبدایک نگهش می‌داره. عکس‌های از بلنیم، ایسکا و در خونه اسکات گذاشتن. مفسر از پیامده احتمالی این قضیه اینکه از تلفن و کارت‌های اعتباری مگان بیشتر از دو هفته است که استفاده نشده، اشاره شگفتی کرد. تا هم بیشتر از یه بار زنگ زد جواب ندادم میدونم چی میخواد احتمالا میخواد بدونه چرا دیروز صبح توی خونه اسکات هیففل بودم بذار گیج بمونه این هیچ ربطی به اون نداره به خاطر اون که اونجا نبودم فکر کنم زنگ زدنش به دستور زنشه حال هرچی من هیچ دینی به اون زن ندارم که بخوام بابدش جوابگو باشم منتظر شدم و منتظر شدم اما هنوز خبری از متامدیگه ای نیست در عوض بیشتر راجب به کمال میخونم. یه شخص خبره و امین در کار بهداشت روان که به مگان مگانگوش میکرد و مزاهمه شده. کسی که از اعتماد اون سو استفاده کرده و بعدا به حقوقش تجاوز کرده. کسی که اونو اقوا کرده و بعدش... بعدش چی؟ فهمیدم که مسلمونه، بسنیایی، یه بازونده از جنگ داخلی بالکان که به عنوان پناهنده اومده بریتانیا، پونزه سال پیش. نه یه بیگانه خشونت طلب. زهران پدرش و برادرش رو توی سربسن از دست داده بود و میتونسته دلیل مجاب کننده برای خوشونت خانگی داشته باشه. هرچی بیشتر درباره کمال شنیدم بیشتر متوجه شدم که حق با هم بوده. من کار درستی کردم که با پلیس درباره اون حرف زدم. من کار درستی کردم که با اسکا تماس گرفتم. بلند شدم و پیراهن راحتی بلندم و کشیدم دور خودم. دویدم پایین و تلویزیون رو روشن کردم. امروز نمیخوام جای اگه کتیب به طور بیاد میتونم بهش بگم که حالم خوش نبود و نرفتم. برای خودم یه فنجون قهوه درست میکنم و میشینم جلوی تلویزیون رو منتظر میشم. عصر حدود ساعت سه بود که خسته شدم. از مزخرفات تلویزیون خسته شدم. ناامید شدم که چیزی راجبه مگام بشنوم یا چیزی درباره کمال. برای همین بیخیال قرار ترکم شدم و رفتم. دو تا بطری شراب سفید آوردم. تقریبا ته بطری رو بالا آورده بودم که ناگهان وقتش میرسه. حالا اخبار داره چیز دیگه ای نشون میده. با دوربین رو دست فیلم گرفته شده و تصویرش لرزش داره. تصویری از یه ساختمان نیمه ساز یا نیمه مخروبه. در پس زمینه صدای انفجاره، سوریه یا مصر یا شاید هم سودان. صدا رو کم می کنم. در واقع بهش توجه نمی کنم. بعد بچش شم میفته به اخبار زیرنویس. نوشته دولت با چالش قطع کمک قانونی مواجه شده است و فرناندو تورس برای بیشتر از چهار هفته اخراج خواهد شد و فرد مزنون به ناپدید شدن مگان هیپفل بدون اتهام آزاد شده است لیوانمو پایین میذارم و سری ریموتو بر و صدا رو بلند میکنم بلند، بازم بلند، بلندتر امکان نداره درست باشه گزارش جنگ ادامه داره همین جوری هی داره از جنگ میگه فشار خونم میره بالا اما وقتی بالاخره گزارش تموم میشه و اونا برمیگردن به استودیو گوینده خبر میگه کمال ابداک مردی که دیروز در ارتباط با دستگیری مگان هیپر دستگیر شده بود بدون اتهام آزاد شد ابداک که روان درمانگر خانم هیپر بوده دیروز بازداشت و امروز صبح آزاد شد به گفته پلیس مدارک برای اتهام او کافی نیست دیگه بعدش نمیشنم که خانم گوینده چی میگه فقط اینجا میشینم چشام تار میشه گوشم صدا میده یه ریس فکر میکنم اونا اونا داشتنش رو چنگشون بود و گذاشتن بره بعد میرم بالا احتمالام بازم زیاده روی کردم که نمیتونم صفحه کامپیوترو ببینم همه چیز دو تایی میبینم سه تایی حتی اگه دستام بزنم چشام میتونم بخونم این کار باعث میشه سردرد بگیرم کتی خونه هست میکنه بهش میگم تو تختم، حالم خوش نیست میدونه باز خوردم شکمم پر شده از الکال احساس ضعف دارم، نمیتونم درست فکر کنم نباید به این زودی شروع میکردم هیچ وقت نباید شروع به کنم یه ساعت قبل شماره اسکاتو گرفتم دوباره چند دقیقه قبل نباید این کارو میکردم من فقط میخوام بدونم کمال چه دروغی به اونا گفته چه دروغی میتونه این قدونها رو فریب بده که باور کنه ولی لیسمش یاغااطی کرده قبللححت اون زنه ریلی تقصیر اونه من مطمئنم روزنامه ها هیچ کمکی نمیکنن خبری از خشونت خونگی نیست حالا دارم میگن که این اشتباه بوده روزنامه ها از اون مردی قربانی ساختن بیشتر از این نخور میدونم که باید وارونش کنم تو سینک چون در غیر این صورت این بطری صبحم اینجا درست و من همین که از خواب بیدار بشم فوری شروع کنم و همه رو سر میکشم و یه بار که شروع کنم همینجوری ادامه میدم بعد خالیش کنم تو سینک اما میدونم این کارو رو نمیکنم به نظر میاد صوب یه باشه اباتاری که من میتونم بشنوم کسی اسمش رو صدا میزنه یه صدا اول آروم اما بعد بلندتر عصبانی و نامید اسم مگانو صدا میزنه صدای اسکاته ازش نارهته مرهتب اسمشو صدا میزنه این مثل یه رویاز به نظرم می میکنم چنگ بزنم بهش و نگهش دارم اما هرچی بیشتر تلاش می میکنم صدا ضعیفتر میشه و ازم دور و دورتر چهارشنبه 24 جولای 2013 صبح با صدای ضربه نرمی به در بیدار میشم بارون میکوبه به شیشه ها ساعت از هشت گذشته اما هنوز بیرون تاریخ به نظر میاد کتی آروم در حول میده و بازش میکنه بعد با دقت داخل اتاق نگاه میکنه رچل حالت خوبه؟ نگاهش گیر میکنه به های خالی روی تختم و شناش خم میشن رچل میاد کنار تختم و زودی بوتری ها رو برمیداره آخ دست باشه تر از اونم که بتونم چیزی بگم ازم میپرسه امروز خیال نداری بری سر کار؟ دیروز رفتی؟ منتظر جوابم نمیشه برمیگرده بره همون جور که داره میره از پشت سر میگه خودتو با الکل نابود میکنی اگه بخوای همینطوری ادامه بدی دیگه باید بشه بگم اون همیشه از دستم هم عصبانیه باید برم و بهش بگم ماهها پیش به خاطر مستی کورکآم بعدی ناهار سه ساعته که با مشتری ترتیب داده بودم به شکلی تحقیرآمیز و غیر اخراج شدم خب من هزینه شرکت رو با این کار حیف و میل کردم وقتی چشام میبندم هنوز میتونم بعد اون نهار رو یاد بیارم نگاه روی صورت پیشخدمت زن و وقتی که ژاکمو دستم داد برخورده توی شرکت و آدمهایی که برمیگشتن و نگاه میکردن مارتین مایلز کهشوندم یه گوشه فکر می کنم بهتر الان بری خونه ریچل صدای رد یه جرقه نور تکونی می خورم و بلند میشم فکر آخر شبم چی بود؟ کتابچه سیاه کوچکم رو چک می اما از عواست دیروز دیگه چیزی توش ننوشتم یاد داشته کمال، سه، ملیت توانایی بلغوفه برای خشونت خونگی یه خودکار برداشتم و روی نکته آخر یه زبدر زدم پایین برای خودم یه فنجون قهوه درست میکنم و میرم سراغ تلویزیون. پلیس شب گذشته یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشته. بخشای از این کنفرانس رو توی شبکه اسکای نیوز نشون دادن. کارگاه بازرس گسکی هم اونجا بود. رایم پریده و لاغر و توبیخ شده به نظر میاد. مختصر اون اصلا اسم کمالو نیاورد فقط میگه که یه مزنون بازداشت و بازجویی شد اما بدون اتهام آزاد شد و تحقیق در حال پیشرفته. دوربینا از رو اون به سمت اسکات میچرخند اسکات قوز کرده و ناراحت نشسته چشاش به خاطر نور دوربینا تنگ شده صورتش در اثر اندوه گره افتاده قلبم با دیدنش تو این وضعیت دردناک میگیره اون آروم و نرم صحبت میکنه نگاهشو انداخته پایین میگه امیدشو از دست نداده و مهم نیست پلیس چی میگه هنوز مطمئنه که مگان به خونه برمیگرده این کلمه ها توهی و بیروهن، انگار رنگ دروغ دارن من بدون نگاه کردن به چشاش نمیتونم بگم چرا. من نمیتونم بگم که اون واقعا باور نداره میاد خونه. چون تمام اعتقادش یهویی با اتفاقای این چند روز گذشته از بین رفته. شادم میدونه که اون واقعا خونه بیان نیست. درست بعد از این فکرها یادم میاد که دیروز با شمارش تماس گرفتم. یه بار، دو بار میدونم بالا تا گوشی رو بردارم. لای لباس خوابای در هم و بر هم پیداش میکنم. سه تا تماس بی پاسخ دارم. یکی از تام و دو تا از اسکات. پیغامی ندارم. تماس تام دیشب بوده، اولین تماس. تماس اسکات بعدتر، درست قبل از نیمه شب. دومین دو تماسش صبح بوده، چند دقیقه قبل. قلبم میگم تند میزنه. این... این خبر خوبیه. اسکات برخلاف عکس العمل مادرش، برخلاف مفهوم روشن حرفش که گفت از شما به خاطر کمکتون ممنونم اما دیگه نیازی نیست هنوز میخواد با من صحبت کنه اون به من احتیاج داره یو به خاطر مهربونیه کتی غرق اشک میشم پر میشم از حس عرق شناسی نسبت بهش به خاطر اینکه بقیه شرابو دور ریخته من باید ذهنمو روشن نگه دارم به خاطر اسکات اون هم نیاز داره تا فکرشو متمرکز کنه. یه دوش میگیرم لباس میپوشم و یه فنجون دیگه قهوه درست میکنم و بعدش میشنم تو اتاق نشی من کتابچه کوچیک سیاه همم هم کنارمه زنگ میزنم به اسکات به محض اینکه که گوشی رو برمیداره میگه شما باید به من میگفتین که هستین لحنش خشک و سرده میدم یه توپ کوچیک سفت سفت اون میدونه کارگاه بازرس ریلی با هم صحبت کرد بعد اینکه اونو آزادش کردن اون انکار کرده که با مگان رابطه داشته و ریلی گفته شاهدی که اظهار کرده چیزی بین اونا وجود داره نامتبره الکلی و احتمالا از نظر ذهنی ناپایدار اون به من اسم شاهده نگفت، اما من متوجه شدم که داره راجع به شما حرف میزنه اما نه نه نه من اون موقع... نه من وقتی اونا رو دیدم به چیزی لب نزده بودم ساعت هشت نیم صبح بود مثل اینکه این حرف معاییم داره اونو مدرک پیدا کردن اینو اخبار گفت اونا مدرک پیدا کردن مدرک کافی نیست تلفن قطع میشه